به نور قسمت 33 بسم الله الرحمن الرحیم ارزه سلام دارم خدمت دوستان گرامی دوستان گرامی توجه بکنید که خواندن غیر الله برای حاجت خواستن شفاعت خواستن مدد خواستن شرک کفر و باطل محسوب می شود. الله سبحان در جای جای قرآن کریم پیام به ما میده. دستور به ما میده، فرمان میده که به غیر از من رو صدا نزنید. به عنوان مثال سوره بقره آیه 186 قرآن کریم. من استدعا میکنم که عزیزان این آیات رو با دقت مورد بررسی قرار بدهید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الدعی اذا دعان اجیب دعوت الدعی در يرشدون و چون بندگان من از تو دربار من بپرسند همانا من نزدیکم و دعای دعا کننده را وقتی که مرا بخواند پاسخ میدم پس آنها نیز دعوت مرا اجابت کنند و به من ایمان بیاورند باشد که راه یابد پیام این آیه چیه؟ پیام این آیه اینه که الله سبحان به ما نزدیکه الله سبحان داره میگه مرا صدا بزنید تا شما را اجابت کنم یعنی مستقیما و بدون واسطه با الله سبحان و تعالی رابطه برقرار کن حالا باز آیاتی رو از متن مقدس خدمت دوستان گرامی میارم امیدوارم که مورد توجه قرار بگیره سوری آل امران آیه 38 رو دوستان گرامی ملاحظه بفرمید. هنالک كَدَعَا زَكَرِيَّا ربه قال رَبِّ هَذِهِ بَثَلِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ اینجا بود که زکریا پروردگارش را صدا زد بخوند و عرضه داشت بار ها از جان به خود فرزندی پاک عطایم کن که تو شنوای دانایی دقت کنید دوستان گرامی زکریا بدون واسطه با الله سبحانه و تعالی رابطه بغرامی کنه و از الله حاجتی رو داره و میگه پروردگارا برای من فرزندی رو فرزندی پاک زوری پاکی رو برای من عطا بفرما. این نکسمی ادعا الله شنونده دعاست شنونده دعا فقط اللهه دیگه به دنبال غیر الله نرید این دستور و فرمان الهیه پیام این آیه این رحنمود رو برای بشریت ارائه میده که الله سبحان رو بدون واسطه صدا بزن حالا باز آیاتی رو از خود قرآن کریم خدمت شما عرض میکنم در سوره انعام آیه 56 انني ان الذين من دون الله الله رب العالمین به محمد رسول الله میفرماید بگو همانا من از عبادت کسانی که شما غیر از الله صدا میزنید میخوانید نشدم بگو از هوس های شما پیروی نمی کنم زیرا در این صورت قطعا به گمراهی میافتم و از رهیافتگان نخواهم بود خب اینه که باز اشاره میکنه که خواندن غیر الله باطل است و الله نهی نموده که غیر الله را بخوانید چون خواندن غیر الله یعنی پیروی نمودن از هوای نفسانی یعنی زلالت یعنی گمراهی یعنی خروج از جایر توحید اسلامیت باز دوستان و گرامی سوری انعام آیه 63 قرآن کنیم رو نگاه بکنید قلمن یونجیکم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا و تدعونه تضرعا و خفیتا لئین انجانا من, من بگو چه کسی شما را از ظلمات خشکی و دریا میرهاند در حالی که او را علنی و نهانی به میخوانید اگر ما را از این محلک نجات داد بی گمان از شاکنا خواهیم شد خب رهنمود این آیه چیه؟ رهنمود این آیه اینه که عزیز من اللهی که تو رو میتونه نجات بده اللهی که میتونه تو را از ظلمات از تاریکی های دریا و خشکی تو رو میتونه رهایی ببخشه ولی دوستان گرامی سوره اعراف آیه رو دقت کنید فمن اظلم ممن افترا الله کذبا او کذب بایاته ینالهم نصیبهم من الکتاب إذا جاءتهم رسولنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ظلوا عنا وشهدوا على من این آیه رو خدمتتون میخونم تسکیس ظالمتر از آن کس که دروغ بندد بر الله یا دروغ پندارد آیات او را اینان را برسد بهرشان از کتاب تا زمانی که درآیند فرستادگان ما تا جانشان را بگیرند میگویند کجایند آن کسانی که میخواندید صدا میزدید غیر الله میگویند گم شدند از ما و گواهی میدهند شهادت میدهند برخیشتن که ایشان از کافران بودند یعنی کسانی که غیر الله رو صدا میزنه فردای قیامت اینها خودشون شهادت میدن گواهی میدن که کافر بودند ما از آیات دیگری از قرآن کریم رو بریم با هم دیگه بررسی بکنیم سوره اعراف آیه 194 قرآن کریم این الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم فدعوهم فلیستجیبو لکم ان کنتم من این آیه رو خدمت بزرگواران میخونم همانا کسانی که میخانید غیر از الله بندگانی مانند شمایند بندگانی مثل شمایند پس آنها را بخانید پس آنها را صدا بزنید اگر راست میگویید باید شما را پاسختند این آیه مضمون این آیه اینه که پیام این آیه اینه که عزیز من اون کسانی که غیر الله رو دارید صداشی میزنید بندگانی مثل شما هستند علی، حسن، حسین، فاطمه بندی مثل توه و خود و قرآن داره میگه اشاره میکنه پیام آیه اینه که آقا این تفکر و این اندیشه از نظر متن مقدس قرآن کریم باطل و مردوده باز دوستان گرامی سوره اناف آیه 197 قرآن کریم رو ملاحظه بفرمید و تدعون من دونه لا و کسانی که به جای او صدا میزنید، میخوانید نمیتوانند شما را نصرت دهند، یاری دهند و نه خود را یاری کنند. قابل توجه عزیزانی که از غیر الله مدد میخواهند، نصرت میخواهند، میگن یا علی مدد. اون کسانی که در قبور آرمیدهاند این امامان خودساختهٔ ای که در قبور آرمیدهاند اینا بندگانی مثل شما هستند اینا مردند یعنی رابطی اونها با دنیای فانی قطع شده و اینکه پیروان مذهب تشیع میرن میخوان از قبور اینها حاجت بگیرند و شفاعت بگیرند میرن عطبات عالیات میرن زیارت رضا در مشهد زیارت در قم کربلا میرن نجف میرن خب این تفکر قرآن میگه باطله قرآن داره اشاره میکنه میگه اینها بندگانی مثل شما هستن اگر اونها رو صداشون بزنید اونها صدای شما رو نمیشنوند الله سبحانی که خالق ماست اللهی که ما رو خلق کرده خالق ماست رازق ماست الله سمیع رو الله بصیر رو اللهی که قادر مطلقه اللهی که به کل شیء محیطه به همه چیز احاطه داره الله سبحان رو ولش بکنیم و بچسبیم به کسانی که در قبرها آرمیدند و اونها رو واسطه برای تقرب قرار بدهیم و بگیم که بله اینها فردای قیامت ما رو شفاعت میکنند یعنی به الله دروغ ببندیم یعنی کارهایی که از الله برمیاد از غیر الله بخواهیم یعنی صفاتی که متعلق به الله از غیر الله بخواهیم از من دون الله بخواهیم خب این شرک به الله. این مستوجب عقوبت الهی است. کسی که این تفکر و این اندیشه رو داراست این فرد از نظر قرآن کریم مشرکه چون الله رو نشناخته فرق بین خالق و مخلوق رو نمیتونه تشخیص بده نمیتونی این مسئله رو از همدیگه تفکیک قائل بشه بابا الله در قرآن اشاره میکنه میگه من از رگ گردن به تو نزدیک هستم هر کجا که باشی من هستم میشنوم میبینم خب اللهی که داره خودش رو به این صورت معرفی میکنه شما به دنبال ولد به دنبال واسط دلال میگردی که به الله نزدیک بشی؟ میخوای به الله نزدیک بشی؟ میخوای برای الله تعینی تکلیب بکنی که فلان امام تو رو فردای قیامت میخواد شفاعتت بکنه؟ پیغمبرش نمیتونه پیغمبری که مبعوث شده از سوی الله بوده لسان الله رب العالمین روی زمین بوده نمیتونه فردای قیامت ما رو شفاعت بکنه حالا این امامانی که تشیع برای خودش ساخته که محلی از اعراب در قرآن کریم نداره مهوریت ایمان و ایقان نیستن اینها اهل بیت ساختگی آیا اینها میتونن فردای قیامت،, قیامت ما رو شفاعت بکنن؟ حالا باز برمیگردیم به آیات متعدد قرآنی در مورد خواندن غیر الله ببینیم که الله رب العالمین تکلیف این عناصری که میان از غیر الله میخوان حاجت بگیرند و شفاعت و مدد آیا این تفکر رو باطل دونسته یا خیر؟ سوره نحل آیه 20 قرآن کریم رو عزیزان ملاحظه بفرمایید. والذین يدعون من دون الله لا يخلقون شیئا وهم يخلقون. و کسانی که میخوانید من دون الله غیر از الله لا يخلقون شیئا. چیزی رو خلق نمیکنن. بلکه خودشون آفریده میشن بلکه خودشون خلق شده اند خب پیام به این واضحی رو آقا شما میشنوید پیامی به این سریحی رو میگیرید شما که اون کسایی که دارید غیر الله صدا میزنی علی رو فاطمه رو حسین رو بل رو اینه که من دون الله هستن دیگه رسول الله من دون الله دیگه اینا که دارید صداشو میزنن خود قرآن داره اینا میگه اینا خودشون خلق شده اند چیزی رو نمیتونن خلق بکنن بلکه خودشون آفریده شدند بعد در همین سوری مریم آیه 48 قرآن کریم من اصدا میکنم عزیزانی که صدای بنده رو میشنوند این آیات رو با دقت بررسی کنید و تعمق کنید تعمل کنید در آیات الهی تا از دام آیت و شیاطین از دام فتنگران دین رهایی پیدا بکنی و اعتزی لکم تدعون من دون الله و ربي عسى عساء لا بدعاء ربی شقیه و از شما و از آن چیزهایی که به جای الله میخانید صدا میزنید کنارگیری میکنم کناره میگیرم پروردگار خود را صدا میزنم امیدوارم که در خواندن پروردگارم بی پاسخ نمانم تمام آیات الهی اینه که آقا مستقیما بدون واسطه با الله رابطه برقرار کن سوره حج آیه 62 رو با همدیگه میخونیم. ذلک بیان الله هو الحق وأنما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير ترجمه این آیه رو خدمتتون ارز میکنم استدام میکنم دوستان گرامی گوش بکنید این بدان است که الله او حق است و کسانی که میخانید دونهی یعنی غیر الله اون باطله و این است الله که والا و بزرگه پیام این آیه آقا اینه که هر کسی رو هر کسی رو غیر از الله هر کی میخواد باشه پیغمبر باشه امامان ساختی تشیع باشه رسولان الهی باشه اگر صدا بزنی باطله یعنی وقتی که بگی یا رسول الله باطله یا علی باطله یا شه قادر گیلانی باطله فقط باید بگویی یا الله مدد فقط باید بگویی یا الله باز هم دوستان گرامی سوره حج آیه 73 قرآن کریم رو ملاحظه بفرمایید یا <تصفيق> ایها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لا لقو ذبابا ولا وجد معوله وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ای مردم مثلی زده شده است پس بدان گوش فرا دهید کسانی را که جز الله صدا میزنید میخوانید هرگز مگسی را خلق نتوانند کرد هرچند برای آفریدن آن گرد آیند جمع شوند و اگر آن مگس چیزی از آنان برو باید نمیتوانند آن را باز پس گیرند طالب و مطلوب هر دو ناتوانند خب دیگه واضحتر از این پیام شما میتونید پیام این آیه چی آقا میگه اون کسایی که مندون الله غیر الله دارید صداشون میزنید نمیتونن مگسی رو خلق کنند اگر این مگس بیاد از اینها قضایی را برو باید نمیتونن ازش بگیرند خب آیا علی حسن حسین این اول، اولیاء تصنعی این اولیاء تصنعی این اربابان تصنعی که برای خودتون اتخاص کرده اید گرفته اید، میتونن مگسی رو خلق بکنند؟ آیا میتونن مگسی رو بیافرینند بسم الله شما که غیر الله رو دارید لقلقی زبان تحرس هی داری میگی یا علی یا حسین یا فاطمه زهرا یا ابا عبدالله یا محدی میتونن مگسی رو خلق بکنن؟ اگر واقعا میتونن خلق بکنن؟ بسم الله ما بریم از اونها مدد بگیریم و حاجت بخواهیم و شفاعت بخواهیم ولی این باطل هست در قرآن کنیم ببینید عزیزان من با سوریه نمل آیش 62 قرآن کنیم رو خدمت شما ارز میکنم امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء و يجعلكم خلفاء الارض االهم مع الله قلیلا ما یا کیست که درمانده را چون وی را صدا بزند اجابت می میکند و گرفتاری را برطرف میسازد و شما را در زمین جانشین میکند آیا با این الله الهی دیگری هست چه کم متذکر میشوید چه کسی میتونه واقعا ما رو از گرفتاری ها از حالت اضطرار ما رو رهایی ببخشه نجاتمون بده مگه غیر الله رب العالمین مگه میتونه رهنمود الله سبحانه و در سوره نمل آیه 62 اینه که کسی که میتونه ما رو نجات بده رهایی ببخشد فقط اللهه یعنی غیر الله هیچ کسی دیگه نمیتونه و الله سبحانه و تعالی در همین آیه اشاره می کنه در این آیه اشاره میکنه کنه می فرماید که چه اندک هستند که متذکر می شود. دوستان و محترم سوره فاطر آیه 13 رو ملاحظه کنید آیاتی که خدمت دوستان گرامی اووردم پیرامون خاندن غیر الله توجه کنید عزیزان سوره فاطر آیه 13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 شب را در روز داخل می کند و روز را در شب وارد می کند و آفتاب و ماه را تسخیر کرده است که هر یک تا سر آمد معینی روانند این است الله که پروردگار شماست فرمان از آن اوست و کسانی که غیر از او می مالک که پوست هسته خورمایی نیستند داره صفات الهی رو سفات الهی رو برای ما داره گوستت میکنه و اشاره که میکنه الله سبحان اینه که اون کسانی که مین دون الله غیر الله دادید صداشون میزنید مالک پوست هسته خرمایی نیستند حسن، حسین، علی، زین العابدین، شیخ قادر گیلانی، محمد رسول الله عیسی ابن مریم اینا مالک پوست هسته خرمایی نیستند چون شنونده دعا فقط الله، چون اجابت کننده دعا فقط اللهه اللهی که از رگ گردن به تو نزدیکه اللهی که میتونه تو رو در حالتی که مستر هستی در حالتی که درمانده هستی تو رو اجابت کنه وقتی که او را میخوانی یعنی با تمام دلت با تمام وجودت بایستی بگی یا الله با ایمان با صلاح ایمان الله رو صدا بزن و الله رو بلالمین اجابتت میکنه ولی واقعا اون کسانی که من دون الله دارید صداشون میزنید واقعا این اربابان تسنعیتون این امامان ساختتون که میرید سر قبرشون و آویزون ذریحشون میشید آیا اینها مالک پوست هسته خرمایی هستند؟ آیا میتونند شما رو نجاتتون بدند وقتی که اونها رو صداشو میزنید حالا باز سوره فاطر آیه 14 قرآن کردیم رو خدمت دوستان گرامی گوستت میکنم این تدعوهم لا يسمعون دعاءكم ولو سمعوا مستجابونکم و یوم قیامت ولا اگر آنها را بخوانید صدای شما را نمی و اگر می اجابتتان نمی کردند و روز قیامت شرک شما را انکار می کنند و هیچ کس مثل الله آگاه تو را خبردار نمی کند دیگه از این آیه روشنتر و سریعتر می شما که متوسل به غیر الله میشی از غیر الله حاجت میخواهی، مدد میخواهی، استعانت میخواهی الله اینجا اشاره میکنه میگه اگر اونها رو صدا بزنید صدای شما رو نمیشنوند علی، حسن، حسین صدای تو رو نمیشنوه. اگر هم میشنیدند، اگر استماع هم میکردند، قرآن که اشاره میکنه و میفرمایید که اجابتتون نمیکردند و اگر هم فرزند میشنیدند اجابتتون نمیکردند و روز قیامت شرک شما رو انکار میکنن این اربابانی که در زعم خودت در ضمن و حام و گمان باطل خودت برای خودت اومدی درستش کردی فردای قیامت شرک تو رو عبادت تو رو انکار میکنه میگه تو مشک بودی سوری فاتر آیی چهل قرآن کریم رو باز با هم دیگه مرور میکنیم قل ارائیتم شرکائکم الذین تدعون من دون الله ارونی ماذا خلقوا من الارض أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعيد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا دقو به من خبر دهید از شریکان خودتان که به جای الله صدا میزنید الذین تدعون من دون الله جای الله میخوانید صدا میزنید به من نشان دهید که چه چیزی را از زمین آفریده اند یا آنها در کار آسمان ها مشارکتی است یا به ایشان کتابی دادیم که از آن دلیلی بر حقانیت خود دارند بلکه ظالمان وعده میدهند بعضیشان بر بعضی مگر فریب را رهنمود این آیه اینه که آقا اون کسانی که به جای الله به غیر الله دارید صداشون میزنید این چیزی رو خلق نکردن مشارکتی هم در خلقت آسمان ها و زمین نداشتند و هیچ دلیل و هیچ ادله هیچ برهانی رو شما نمیتونی ارائه بدی. اگر دلیل حجت و برهانی رو دارید قل و و برهانكم این کنتم صادقی اگر اینها واقعا این کسایی که غیر الله دارید صداشون میزنید یا ابا عبداللهی که داری میگی یا حسینی که داری میگی آقا بسم الله بنا من خواهر من بسم الله یک آیه از قرآن بیارید که بله اونها صدای ما را میشنوند اونها در خلقت آسمان ها و زمین در کنار الله در جنب الله در پهلوی الله اینا مشارکت داشتن. عزیزان سوره صافات آیه 125 قرآن کریم رو نگاه بکنید که در مورد الیاس نبی است. ترجمه این آیه اینه که آیا بعل را صدا میزنید و بهترین آفرینندگان را وام می‌گذارید مشرکین دوره الیاس نبی را داره اشاره می‌کنه داره میگه آقا صدا می زنید بل را و رها می کنید پروردگار متعال رو حالا شما حساب بکن به جای بل علی رو بذارید حسن را بذارید محمد را بذارید شیخ قادر گیلانی را بذارید آیا صدا می زنید این افرادی که من اشاره کردم رو علی را آیا صدا میزنید علی را و الله رو اللهی که خالق ماست رو رها میکنید فردای قیامت حاملان این تفکر که غیر الله رو صدا میزنند الله رب العالمین رو رها کردند وارد جهنم میشند اینا جز احسار شدگان هستند سوریه قافر یا سوری مؤمن مؤمن آل فرعون آیه 12 قرآن کریم رو نگاه بکنید ذالکم باننه اذا دعى الله وحده كفرتم وان يشرك به تؤمنون فالحکم لله العلیل خدمتتون قرائت میکنم ترجمه رو این برای آن است که چون الله به تنهایی خانده می شد کفت می و چون به او شرک آورده میشد به آن ایمان می آوردید. پس امروز حکم از آن الله والای بزرگ است این آیه داره روانشناسی کفار و مشکین رو برای ما مشخص و ترسیم میکنه که وقتی که الله به تنها یاد میشه وقتی که ما میگوییم یا الله یا الله وقتی که گفته میشه اینها کافری می‌ورزند ولی وقتی که یا علی و یا حسین و یا ابا عبدالله و یا فاطمه زهرا اشاره میشه اینها ایمان میارند. پس از نظر قران کریم اینها مشک هستند از نظر متن مقدس قرآن کریم اینها بزرگترین ظالم هستند از نظر متن مقدس قران کریم اینها نجس هستند و جالب اینه که یک آخوند شیاد که عنوان آیت الله بودن رو یدک میکشه اومده گفته که آقا چرا بعضی از این مردم میان پشت ماشین هاشون می نمیسن بگو فقط یا الله این ترفند وحابیت است میگه این ترفند وحابیت است خب سوری قافر آیه 20 قرآن کنیم رو با همدیگه بررسی کنیم والله والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير من ترجمه این آیه رو خدمت شنوندگان محترم عرض می کنم و الله قضاوت میکند به حق و کسانی که میخونید صداشون میزنید مین یعنی غیر الله به چیزی قضاوت نمیکنند همانا الله او سمیع و بسیره یعنی کسی که داوری میکنه اللهه کسی که فردای قیامت قضاوت میکنه داوری میکنه حکمیت میکنه الله خواهد بود اون کسانی که مین یعنی غیر الله دارید صداشون میزنید به چیزی قضاوت نمیکنند این اولیایی که برای خودت اومدی تراشیده ای این امامان خودساختی که برای خودت اومدی درستش کردید اینا به چیز قضاوت نمی کنند کاره نیستند که بخوان ما رو شفاعت کنند نزد الله فردای قیامت کاره نیستن که اینا یعنی تو اومدی دروغی رو به الله داری میبندی و کسانی که به الله دروغ میبندند روسیا هستند فردای قیامت سوره قافر آیه شص قرآن کریم رو دوستان گرامی توجه کنید. وقال قان ربكم ادعوني استجب لكم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخل و پروردگارتان گفته است مرا صدا بزنید مرا بخوانید تا شما را اجابت کنم همانا کسانی که از عبادت من کبر میورزند به خار در جهنم در آید پیامی که در این آیه نهفته است اینه که دعا خواندن صدا زدن عبادته یعنی فقط بایدی الله رو الله سبحان رو اللهی که خالقته رازقته فقط پایسی الله را صدا بزنی اگر غیر الله را صدا زدی یعنی اومدی الهه و معبودی رو در کنار الله رب العالمی داری عبادتش میکنی و این تفکر و اندیشه از نظر متن مقدس قرآن کریم باطل مردوده سوری زخرف آیه 86 قرآن کریم ولا یملک الذین یدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم یعلمون و, و کسانی که جای او صدا میزنند میخواند، اختیارت شفاعت ندارند مگر کسان که از روی علم حق گواهی داده باشند هیچ کس اختیار شفاعت رو نداره فردای قیامت فقط الله سبحانه و تعالی است که شفاعت میکنه و اون کسانی که دارید صداشون میزنید اختیار شفاعت رو ندارند تو اومدی داری به الله داری دروغ میبندی تو داری برای الله سبحانه و تعالی داری تعینی تکلیف میکنی که بله فلانی و فلانی و فلانی شفیع من فردای قیامت دروغ های رو زیر این عنوان که بله اللهم شفا و شفاعه حسین یوم الورود یا وجهن اند الله اشفعنا اند رو درست کردی و مغلدین به خورد مقلدین دادی چه خودعه به دروغ بالاتر از اینکه تو بیای به الله رب العالمین تا اینی که بله بگی که فلانی و فلانی فلانی شفیع من فردای قیامت این دروغ بستن به الله نیست اللهی که در متن مقدس قرآن کریم میفرماید که شفاعت یک سر از آن الله، آیا کسی میتونه در کنار جنب الله در پهنوی الله اختیار این رو داشته باشه که کسی رو بتون شفاعتش بکنه در سوره انفطار فتار آیه 19 قرآن کریم الله سبحان میفرماید یوم لا تملیکو نفس لنفس شیعه والعمر یوم لله روزی که اختیار ندارد نفسی بر نفسی چیزی را و امر یک سر از آن اللهه پیامی که در این آیه نهفته است آقا کاری از دست کسی بر نمیاد فردای قیامت یعنی کسی غیر الله کسانی غیر الله بخوان ما رو شفاعت کند اونم نزد الله پس این تفکر و این اندیشه از نظر متن مقدس قرآن گنیم یعنی باطل و مردوده قابل تفجه کسانی که شفیع تراشی رو باب کردند یعنی دکانی رو در قالب شفیع تراشی اومده درست کرده و مردم رو از سبیر الله رب العالمین خارج کرده حالا می گردیم به آیاتی که پیرامون خواندن غیر الله سوره احقاف آیه پنج قرآن کردیم ومن من ممن مم يدعو م دون الله من لا يستجيب له الا يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون و کيس تر از آن کس که بجاي الله کسي را ميخاند صدا میزند که تا روز قیامت هم او را پاسخ نخواهد داد و آنها از دعایشان بیخبرند خب رهنمودی که این آیه برای ما ارائه میده اینه که آقا اون کسایی که غیر الله دارید صداشون میزنید حسن و حسین و شقادر گیلانی و این افراد صدای شماره نمیشوند تا روز قیامت پاسخ شما رو نمیدند اینها از دعای شما بیخبرند یعنی وقتی که اونها رو دارید صداشون میزنید اونها صدا شما رو نمیشنوند یعنی زالترین یعنی زالترین گمراه ترین انسان ها در پیشگاه الله سبحانه و تعالی اینه که اون افرادی رو دارید صداشون میزنید که تا روز قیامت شما رو جواب نمیدند اونها از دعای شما هم بیخبر هستند حالا برید سر قبور اینها آویزون زریها آویزون مکعب فلزی بشید در مقابل این قبور قبوری که توش پر خاک، از اونها برید حاجت بگیرید مدد بگیرید اونها رو صدا بزنید و در زن اوهام گمان باطل خودتون فکر کنید که بله اینها فردای قیامت شما رو میخوان شفاعتتون بکنند سوره جن آیه 18ه قرآن کریم ان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احد اینکه مساجد ویژه الله هست پس هیچ کس را با الله نخوانید. خب این آیه داره میگه با الله احدی رو صدا نزن یعنی فقط باید بگی یا الله پس پیام این آیات این شد که فقط الله را صدا بزن احدی رو در کنار الله در جنب الله در پهلوی الله صدا نزن مستقیما و بدون واسطه با الله سبحان رابطه برقرار کن چون شنوندهٔ دعا فقط الله است، چون الله هر کجا که باشیم صدای ما رو میشنوه میبینه پس من از همه دوستان گرامی این خواهش رو دارم که آیات قرآن کریم رو مطالعه بکنید زیربنای اعتقادی و ایدئولوژیکی خودتون رو بر محور اندیشه‌های دین رحمانی دین ربانی اسوال بکنید تا بتونید از این زلالت گمراهی که در اصل کنونی بر جوامع بشری سایه افکنده رو از دام اینها نجات پیدا بکنید